الحمد لله و صلات و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم من که نامیدم زپیران کوهن من که نامیدم زپیران کوهن دارم از روزی که می آیت سخن بر جوانان سهل کن حرف مرا بهرشان پایان کن جرف مرا نوجوانی را که بینم به ادب روز من تاریک میگردد چو شب تاب و تب در سینه افروزت مرا تاب و تب در سینه افروزت مرا یاد عهد مصطفی آید مرا جوانان محترم امروز جای خوشیست باز هم در مقابل یک جمع از جوانان مسلمان و جوانان هدفمند قرار داریم و می خواهم خدمت شما بسیار نقاط مهمی را که ضرور است جوانای اصر ما او را درک بکنند و او را عمل بکنن خدمتان تقدیم بکنم. اول وقت قرآن عظیم و شان باز میکنیم در قرآن عظیم و شان ما میبینیم که جوانان نقش بسیار اساسی در تاریخ اسلام که از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت محمد صلی الله علیه و نقش بسیار اساسی داشتن خداوند متعال جل جولهو فرماید که در مورد اصحاب کهف که انهم فتیه آمنوا بر ربهم رب هدا اصحاب کهف مجموعه از جوانانی بودند که بپروردگارش ایمان داشتند و ما برایشان هدایت آن هم زیاد کردیم یکی از پیغمبران که از جمله جوانان بود و در جوانی خود را نشان داد که در قرآن از مشان او یک جوان خدای عزواجل ابراهیم علیه السلام امت خواند. قالو سمعنا فتن یذکرهم یقالو له ابراهیم گفتن ما شنیدیم که جوان است که را یاد میکنن و اور را ابراهیم میگن ابراهیم علیه السلام هم یک جوان بود ولی جوان بود که هیچ وقت با وجود که کفر و دشمنای حق اکثریت تشکیل میدادن هیچ وقت تسلیم اندیشه های کفری که اکثریت و اقلیت هست تحتی اندیشه ها نرفتن بلکه خودش با شخص خود در مقابل از اینا مبارزه کرد به خاطر حضرت ابراهیم علیه السلام مثل یک امت بود یعنی ممثل امت اسلام در اون وقت بود به تنهایی خود یک نفر ممثل یک امت و در مقابل امت کفر قرار گرفت جوان دیگه که اون نوجوان میگن این او جوان هم در قران عظیم شان بر ما درباره ازو گفته شده که حضرت اسماعیل علیه السلام بود فلما بلغ ما حسین قال یا بنی اني ارى في المنام اني اذبحك بعضی از کسانی که حقیقتا قرآن نبی خواندن شکل اختصار بیان که شرط است که انسان این بود از اونمو برنامه بدرش. خواه از بچان که ابراهیم علیه سلم رفتر که این بزرکم. اینی عرف ملان مدر خواهرم دیدیم که انی از بخواه یا متر زنها میکنم. ترق قربالی در راه خدای عزا وجل. خود دریق بکنم فنظر ماذا ترا ببینیم بچیم که چی نمی بینیم اینجا اسماعیل علیه السلام عقیده خود بیان میکنه و حقیقت بیان میکنه و میگه یا ابت فعل ما تو ای پدر ما افعل ما تو امر که افعل ما تعمر بگو چیزی که تو میخوایی بلکه میگه افعل ما تو امر بلکه تو چیزی را بکن که امر کرده شده ای یعنی امر خدا بلکه امر خدای عزواجل اثر ما تدبیق بکن شاید تو پدر باشی دلت بسوزه شاید بالای ما ترحان بکنی ولی چیزی که خدای عزواجل میگه از حاکم خدای عزواجل هیچ قدمی عقب ناری ستجدونی انشا الله من, ای من, را من از ای پدرم امشا الله مرا در جمله صبرین خخاطر یافتی که ما در مقابل تطبیق حکم خدای عزوجل صبر میکنم. از این خاطر تاریخ قرآن تاریخ جوانای باهمت است جوانای قهرمان است که اونا تاطورن که، صفحات از تاریخ با خون خود نوشته بکنن تاریخ تغییر بتن در مقابل ظالما و مستقبیرین استادا جوان بر حق بگوین حق است و بر باطل بگوین که تو باطل هستی تو غلط هستی تو خائن هستی تو فریبکار هستی تو وطن فروش هستی بتونه که بر برازو بگوین اینجاست که جوان میتونه که وجیبه اساسی خوده و پیش ببره و سنت پیغمبره را و راه پیغمبره را به شکل درست ادامه بته جوانانی بودن که در مقابل عزی اتا در مقابل خواهشات جنسی در قصرها دعوت شدن ولی باز هم وقت حکم خدا در مقابلشان قرار میگیره، نه تنهایی که بیا تو امروی مزد ما بکن بلکه برش گفته میشد که. اگر زنا کنی، به زندان میری اگر این جنارات انجام نتی تو بسیار توهین و تحقیر خواهد شدی. از جمله صاغرین خواهد بودیم در اینجا حضرت یوسف علیه السلام با شهامت میگه که رب سجن و احب و خدایا زندان برای من بهتر است نسبت به ای که من در گناه باشم امروز ما جوان داریم که بگویا که زندان برای من بهتر است ازی که در مدل صفیق وطن فروشا قرار بگیرم زندان برای ما بهتر است نزبت بی که من وطن خود لیلان بکنم زندان برای ما بهتر است نزبت بی که من در صفیق خاینین قرار بگیرم و تاریخ زندگی من با قلم سیا نوشته شود. من که نامیدم زی پیران کهن هند آلی ما از اونش سفیدا با احترامی که برشان داریم باز هم از اونان نامید شدیم چون اگر برش پین یک نماز تراوی نوخ خونده شده غای مغاله میپرده اگر امام دونه قدر و سجده سبحان ربی العظیمه با طریق رسول خدا صلی الله علیه وسلم آهسته آهسته بگوه در مقابل امام استاد و او را متهم می سازن بسطحان نام های عجیب و غریب فلانی ملاسد تراغیر تویل خان فلانی مولوی سد رکوره بسیار طویل کرد دیوه است. اینجا ای غیر مستقیم رسول خدا را دشنام میتن به خاطر از ای که به نظر از او کاش که وحابی عقیده درست دارد به نظر از او وحابی بسیار چیز بد است از این خاطر حتی سنت رسول خدا را نمی که تطبیق بکنن از این خاطر من که نامی دمزی پیهانی که هن مازو از او کسایی که به شکل تقلیری و حتی از او جوانایی که خودش جوان از شری جوان از لاکن داخل وجودش مثل کمپیراست این که نماز تال خوردارش قیامت خدا میشه. از این هم نامی دستم دارم از روزی که میآید سخن بر جوانان سال کن حرف مرا بهرشان پایان کن جرف مرا نوجوانی را که بینم بی ادب نوجوانی که ادب نداشته باشه، اخلاق نداشته باشه. بعضی از کسا هست که حتی در مسجد هم آداب و اخلاق مسجد مرات میکنن. در مقابل والدین خود هم به می باشند، در مقابل استاد و حتی در مقابل قرآن عظیمشان به عدد میباشن. میگن را که بینم به روز من تاریک میگردد چو شب. روز من تاریک میشه که از برای خدا ای امتی که اول حرف قرآنشان اقره است. نام کتابشان قرآن است که یعنی امتی که خدایشان به قلم قسم خورده و به چیزی که نو میشه نون والقلم و القلم و به او خدایشان قسم میخوده باز هم نمیخانه باز هم درد نمیکنه باز هم درد پی برنامه های شیطان ها میره اگر ای قسم نوجوان را که بینم بیاده نوجوان را میبینم که مثل دخ... مثل ربقاسه هم میرخسه نوجوان را میبینم که خود خیله و رشخم نو جوان رو میبینیم که اعضای بدن خوره مثل رکاسه ها و فروش آمده میسازه این قسم جوان رو که میبینیم روز من تاریک میگرده تو شب روز من تاریک میشه که خدایا ای امت وقتی که جوانه به قهقرا برن جوانه بدبختی برن پس پیرا چی خود کردن اطفال از ما چی کرد اگر پینجا سال بعد تاریخ ما رو بخوانن سر ما اولادهای ما لعنت خود گفتن که شما کسایی هستین که حتی با دیگرد خارجی است، حتی دفاع خارجی میکنن و حتی آکت خارجی ها مهایده میکنن و حتی مسلمانان ها را میکشن و به امرای او کسانی که سر قرآن پای میمانن او کسانی که قرآن در تشنابه میاندازن می می می می به امرای از او خدمت میکنن صف از را بسته میکنن از خاطر تاب و تب در سینه افروزتما را یاد عهد مصطفیات مرا کجاز جوان چون عمر که در مقابل کعبه در مقابل مشرکین استاد میشه و برش میگه که این ما با سراحت کلمه را می خانم هست کسی که بخواد در مقابل ما استاد شود کاش هست مثل حضرت حمزه که وقتی یک توهین عادی که ابو جهل برای رسول خدا میکنه او سیلی در دان ابو جهلو تو بکس میزنه که ابو جهل به زمین میفته کجا شد اتو, جوانا؟ اتو جوانه؟ تو جوانی که وقتی که شب آروسیش می باشه می خواهد که آروسی بکنه مجرده که گفته میشه که که علی الجهاد آروسی خودت تر کرده و می در صف شهدا و شهید میشه و ملائکه ها جنازه ها از اون رو می خونه آیا ما جوانایی هستیم که پیروی از اتو اشخاص می کنیم چرا رسول خدا صلی الله علیه و وقتی که سفیر خدا سفیر خدا تعیین نکنه اولین سفیر اسلام کی هست حضرت صاحب یک جوان مصعب ابن امید یک جوان یک نوجوان است چرا این نوجوان را تعین میکنه به خاطر از ای که شخصیت به نیست شخصیت به سال نیست شخصیت از داخل است از این خاطر حضرت مصعب ابن عمیر یک شخصیت دایانه بزرگ داشت که رسول خدا صلی الله علیه و سلام که اگر ای را در مدینه روان بکنم حقیقتا ممثل راستی اسلام است وقت لشکرله پیغمبر صلی الله علیه و سلام می که روان بکنه به طرف روم حضرت اسامه ابن زید یک نوجوان عشد ساله را در راز قرار می بالای عصد سوار میشه و کبار و صحابه در عقب از او روان هستند. و وقتی که رسول خدا رهلت می کنه صلی اللہ علیه وسلم در این جه که در این جه که حضرت و صدیق نمی که رحبری را که رسول خدا تهین کنه تغییر بته جوان اجده ساله جوان اجده ساله قماندان قوتهای اسلامی جنرال مسلمان جوان ساله، اسامه ابن زید چرا به خاطر که اینکه جوانا کمر پیغمبر اسلام وسته کردند با پیغمبر صلی الله علیه و سلم استاده شدند از این خاطر بین امروز ما از خود بپرسیم که آن ما جوانا چه مسئولیت داریم ما اگر مسئولیت خدا درک نکنیم ما اگر مسئولیت خدا نفهمیم باز هم نمیتونیم که در این جهان در اینجا زندگی درست بکنیم قدرهای محترم شما خوب میفهمین که امروز جوانا در مقابل چالش های بسیار خطرناکی قرار دارن امروز اگر ما حقیقتها را درک نکنیم و ما حقیقتا در راه اونمو جوانایی که در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیه شده بودن در راهی از اونا نرویم باز هم ما کامیابی و پیروزی را حاصل نمی کنیم چطور می توانیم که برای از این آباریم اینجا بعضی از نقاط است که من خدمت شما می خانم ولی خاطر از اینکه که کلگیر می بره باید ما از پیشتون سوال بکنم و شما با صدای بلند جواب بدین که ذات رحمان کیست؟ الله ذات رحمان کیست؟ الله ذات رحیم کیست؟ الله با مت صدای صدایی که هیچ از داخل بیرون نمیره نه نام خدا جوان ها ذات رحمان کیست؟ الله ذات رحیم کیست؟ آه. ذات الجلال کیست ذات الغفور کیست ذات السطور کیست ذات قهار کیست ذات جبار کیست ذات محیمن کیست؟ ذاتی که کیس؟ کی کفار شکست بیتکی است؟ ذاتی که کنر مسلمان را تقویت میکنه کیست؟ ذاتی که کی پروردگار همه ماس کیست؟ ذاتی که کی ما باید به اعتماد میکنیم کیست؟ ذاتی که کی به عبادت میکنیم کیست؟ ذاتی که از کومت؟ رسول الله شما سخنکش نباشین سخن کش باشین یکی سخنکش است و یکی سخن کش ما در اون جایی که میریم خوب همه تو خدا کرده میریم که چیزی بگوییم وقتی که ببینیم که چه نفر پیچیم از یکیش میخواد سعی ام خال تی نکرده بیار که یک دو تا بخوریم و بریم. یکی دیگه چیز میگه، ازو خاطر که سرنویس روی یه سال کنیم، ام قارش. میگم صبحانه را بکرایبل زده همیشه و رخات کار خدا جیب خودی. اما سخن کاش کسی که آدیاکل احساس داشته باشه، هماوس داشته باشه، در مقابل حق، در مقابل نام خداوند. قوت ایمانش زیاد چاله به بذكر الله تطمئن القلوب قلبش با ذکر خداوند اطمینان پیدا بکنه که حتی استادا هم و که وقت ما ات جوانای قوی و با ایمان داریم گپال ما به از این خاطر بسیاری وقتها عملی که ما را میگن که فلانی چطور است به خاطر ازی بعضی جوان هست من خود راستی بسیاری وقتها در بسیاری مجلسا نمیام بعضی جوان ها هست فقط کمپیرا وره کمی امیرف والا ی استاد تو راستی بود بینی از تو بود لنگیش کاج بود قواره شده بود تمام روز غیبت رو میکنن از این خاطر دگر روز که با دعوت میگن ما میگیم بهدار مارتر برو یک دو تا کامپیوتر مثل خدا پیدا کن که بیه به بزنن ما وقتی که گف میزنیم از خوشحال کمزور اینا بدار کن پر کارا ناری و هم چی خلقه را کن. ما حقیقت ها رو اینا مت میگیم یا خوش باشه و یا خفه باشه کس راضی بود راضی بود کس خفه بود خفه بود ما حقیقت ها رو برات میگیم بر ظالم تو ظالم هستی خاین میگیم که تو خاین هستی برای وطن فروش میگیم که تو وطن فروش استی برای مسلمان میگیم تو مسلمان استی حق باید ما بیان بکنیم <تصفيق> <تصفيق> الحمدلله رب العالمین اینال جوانای محترم ما مسلمان ها ما جوانا چه باید بکنیم اول باید مسئولیت های خود درگ بکنیم اول مسئولیتی که ما داریم فهم درست اسلام است. امروز به اشکال مختلف یا دوستای جاهل و یا هم دشمنای ظالم و مکار میخواه که اسلام از چری اصلیش دور بسازند. برادرای عزیز اگر ما و شما ببینیم اگر کمپیوتر تان صد جیبی داشته باشه. و ای سجیبی کمپیوتر تان پر شده باشن آیا میتونین چیزی دیگه در او پیست بکنین؟ هرگز نمیتونین دین مقدس اسلام سجیبی کامپیوترش روزی که خدای عزواجل گفت که الیوم اکملتو لکن دینکن دین اسلام تکمیل شد روزی که قرآن ختم شد دین تکمیل شد روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن تفسیر و تشریح کرد دین تکمیل شد بنا ان نمی چیز چیز ای را زیاد بسازیم در بین دین از این خاطر وظیفه اولی و اساسی یک جوان مسلمان این نیست که با وکلا مچی میگه پدر کلانم چی میگه مادر کلانم ما چی میگه وظیفه اساسی یک جوان مسلمان این است که دین حقیقی که قرآن از ایشان او را بیان کرده و چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفته ایره سر خود تطبیق بکنن و ایره باید بفهمند ما باید برای اسلام شناسی وقت بتیم برای درس تفسیر وقت بتیم برای فهمیدن حدیث وقت بتیم اتونه از که ما تخصصهای خودا ترک بکنیم و باید کل جوزیات دین باید بفامیم بلکه مسائل جزئی را برای متخصصین بانیم لکن به شکل کلی باید دین مقدس اسلام به شکل اساسیش بفامیم باور بکنیم برادر عزیز یک چنایی میشد شد پیش زیارت بابا کایدانی. یک نفر رو دید که قلف اگر تا ماش میکرن چنایی برش مگه که چه میبونی ای چرا ماچ میکنی ای قلف اخی میدین چیناست مجهور کردیم یه خواهد آسمان برای تانه شده باز اگر بسیار تو علاقه من که قلف اماش کنی خائن دست من زنده شسی نماش برادر با این کار ما ایواز از این که دین رو بر مردم معرفی بکنیم حتی او چینایی از دین متنافر میشه همیست دین؟ همیست اسلام؟ همیست؟ باید دین اسلام حقیقی رو بر مردم نشان بدیم اینمی چن کاری بر دیگران بنیم و یا ما جوان ها که از تمام ولایت افغانستان هستیم باید اینمی چند سالی که اینجا برای درس مسلکی خود هستیم ده پالو یزی اینمی فرصت هاست که اینجا قلم و کاغذ در پیش ما باشه و هر چیزی که ضرورت است ایرو تدوین بکنیم یک دوره تفسیر مکمل ختم بکنیم یک دوره ترجمه قرآن ختم بکنیم احادیث واسه یاد بگیریم که وقتی که پس میریم بر مردم اشاره و بیصفات خود دین حقیقی رو برشان بیان بکنیم این وظیفه کی وظیفه جوان هست وظیفه کدام جوان است جوانی که مسلمان حقیقی است جوان که او را خدا دوزداره جوان که او رسول خدا دوزداره صلی اللہ علیه و وسلم جوانی که او را اصحاب کرام دوزداره جوانی که می تانه بر اسلام خدمتگار باشه و حقیقتا اسلام بر مردم برسانه یه تو جوان ای کار کرده میتونه اما جوان که همیشه خب باشن و همیشه خواب خدا و جوانی را بشرمانه که تا دو بجه شب قطع میزنه و میگه من روزدار هستم تا دو از دو بجه شو فلم سل میکنه در شب های لیلة القدر نازل ملائکه و روح فيها باذن ربهم من كل امر ملائکه های خداون نازل میشن که ما را در حالت عبادت ببینن ما برای ملائکه های خدا که در شب لایله القدر ما قد تمیذنیم در لایله القدر ما فعل میگنین ما تشسمای ما روزه نیست ما گوش ما روزدار نیست ما قلب ما روزدار نیست ما فقط از خوردنی و نوشیدنی روزدار هستیم. این قسم انسان نمیتونه که شهادیت شهادتنامه تقوا که شهادتنامه ماه رمضان سیر حاصل بکنه بسیار کثا خدا فریب میتنه. موضوع دومی که برادرای مسلمان او باید یاد داشته باشیم با خبری از چالش‌های معاصر است این چالش ها چی است اسلام امروز تبلیغ میکنه که برادر اولش بی‌طرفیست بیطرف باید باشی تو عارف هستی تو دکتر هستی تو انجینیر هستی تو ژورنالیست هستی تو ادیب هستی تو سازدانه هستی تو باید بی‌طرف باشی بی‌طرفی چی معنی یعنی بی‌طرفیش معنی این چیز است که وقتی که فارغ شدی در از این نشو یعنی بی‌طرف معنی چیست؟ است فکر کو که فارغ شدی اگر در تو را باز کس 10000 افغانی ماش داره آمریکایی میبرت میگن من 20000 ماش میتمتت اسرائیلی میگم من برای تینجه ماش میتوم چون تو به طرف این ای برنامه غیر مسلمان هست که میخواید جوانا رو میگه که تو باید به طرف باشی به طرف یعنی خونسا باشی انسان خونسا رو اسلام نمیپذیره انسان مسلمان طرفش معلوم است مسلمان دروغ نمیگه کافر هم دروغ نمیگه مسلمان حقیقی هم دروغ نمیگه و کافر حقیقی هم دروغ نمیگه کی دروغ میگه منافق دروغ میگه دروغ گفتن عادت منافقی است چون منافق دانش یکی است و قلبش است از این خاطر تمام حرفها و تمام گپهای منافق یکسان نیست. مسلمان حقیقی دروغ نمیگه. مسلمان حقیقی هر جایی که برابر شد، حقیقتو میگه. راست میگه. یک روز یه آمریکایی که تماجره بحث میکرد، گفت: "آیا تو حقیقت ها را میگی؟" ما گفتم: "بله، حقیقت ها را ما میگم." "آیا نمیترسی؟" ما گفتم: "نه، والا ما خطاباله برام ترس چی دوره؟ نمیفهمیم." اون توستی که وقتی از کورتی سنگی تا اورزگان میری وقت پتلون رو تخراب کردی مسلمان نمی ترسه. مسلمان نمی ترسه. از چی بترسن گفتی خواه یک قسم زندگی من بله ما هیچ وقت نمی ترسیم ولی یک حقیقت درک باید بکنی یک حقیقت درک بکنی که ما مردم افغانستان خیر است بیا تفلا دو بین قنداق بکش بیا شیندند بمبورد کو. برو هندار و بمبورد بمبارد بکن. تفل ما را بنام به نام و در مقابل الخایده خصاد شده نمیتونی حال تفلا رو در که به خاطر نبوی که اگه تا کشتیم. کی نکشتی هشتو که دو ساله. کی نکشتی هشتو که چهار ساله. غیرت تامین همه قبل است که پیش روی دفتر دیوالای شش متره ماندی. نامت سوپر باور است. مورغونچا بر جور میکنینا متا سوپر پاور ما گفتم میخوام به شکل خود سوپر پاور نمیشن اینا گفت که خب خینا چی باید بکنیم ما گفتم به خاطر از یک شما چه چیزا میگیم خی نظر شما چیز ما گفتیم نظر ما چی است اینا ما بیچاره هیچ چیز نداریم تا 20 سال پیش شما امریکا نمیگفتن که اگر قولا ایتلش نباشه اگر پتلون کابوی نپوشی، اگر, اگر همسرت مثل مثل کندی کندلی دامن مینوجوب نداشته باشه اینا میتونه اینا میتونه که سلای اتمی بسازن اینا ایرانیا گفتن که ما کت لنگی اینا کت ریچ اینا کت اینا خانم ما با است اینا برنامه انرژی اتمی درست استفاده پیدا کردیم پاکستانیا گفتن اینجا گفتن اینا مراسک تو میگیتت باید بسیار چشمه ای سوز داشته باشه و چی اینا مسیاپوس لاغرک مینت برای سلای اتمی ساختم ما گفتم ان شاء الله تعالی در بین جوانای مسلمان که امروز ما الحمدلله می‌بینیم 5 سال پیش 82 درصد معاصر این طرفدار امریکا بدن امروز 98 فیدت محسلین ضد امریکا هستن و میگن که مرد بر امریکا مرد بر اسرائیل مرد بر دشمن اسلام مرد بر دشمن مرد بر طرفدار امریکا مرد بر غلام امریکا این حاله اینجاست که ما گفتم ما آزادان هم میبینیم چرا این جوانها رو را کی, کی... ذهنشان تا تغییر داد. عرکت های زشت و منفی و غیر انسانی شما بود که این جوان‌ها را کلشان از ذهنشان تغییر کرد. و جوانایی که کورس انگلیسی می‌خونه، آنوز دشمن درجه که توست. و بر ضد تو خیزت تون تو دشمن بشریت هستی، دشمن انسانیت هستی. گفتم بیا تو هم صادصی، من هم صادسم. ببینین کت ما ولایت به ولایت, ولایت بگرد. مرا بگی در کل ولایت‌های آمریکا بگردان که مت می‌گردم. ولی تو جرأت که از از کوتی پای پیاده بیری ای سوپر پاور خواستون به <تصفح> من رو یک باسون که من در کلولایت های در اروپا امریکا یک ویزا فیدار کنم کلیش پای پیاده میگردون ولی گفتم میره فراموش نکن اینمی جوانای را اون جوانایی که فروخته شد بی سال پیش به روس ها فروختن آل امریکا را خودا میفروشن او کسایی که فروخته شد و کلش کارملو ترکی و نجیب و یوبره یا, واره، یا بی پتلون میموره یا یا مردار میشه یا قبرشون معلوم نمیشه ولی جوانایی که ما مسلمان حقیقی داریم ایناله جوانای دیگه داریم که اونها روشن هستند میفهمند خدا میربان است در از 1 جوان گفتم خدا میربان است خیر است اون دو پیدا کرد پاکستانی یک پیدا کرد ایرانی یک پیدا کرد چینایی پیدا کرد خیر است خدا میربان است در بین جوانان ما یک کس پیدا شده که او هم در انرژی اتمی دسترسی پیدا کنه و ما زالک علی الله به عزیز ولی بazi یه گفتم گفت بفهم یا گپ باید باهت که باز اگر ما دسترسی پیدا کردیم باز اگه سه و چهار باز پچک کردنش <تصفح> بسیار ساده است تو به چه قائم کردن تری ما که میگم که بیخی نقشهت نیست گفت راه حل ریزالت برای من خیرای نزی بود دیوانه شوه گفت خیرای حل برام باشه من من بیچاره خنده برش میگفتم ما, خ... ما می گفتم ما, ما که تو پیشانی درچی و ترام نیست یعنی خلاص با خنده خنده برد. میگم گاف خودت چی گفت که خی... راه حل هر چی است گفتم راه حل بسیار ساده است چی راه حل ما گفتم یک شاعر گفت که گفتم که ما گفت نه تا نکنم گفتم که مکن گفت مکن تا نکنم یعنی گفتمش که دشمنی نکن گفت تو دشمنی نکن تا ما دشمنی نکنم این یک سخن هم چنان خوش آمد که مپرس امروز ملت ها روز و روز بیدار میشن روز و روز حقیقت ها را درک میکنن او مردم خوابوردن است مردم امروز اگر یک امریکایی در شش سال در اینترنت دسترسی خوب پیدا میکنه یک جوان افغانی در شش ماه اونمو علمیت دانش خدا برش میتن و اینمو قدر قوی است و الحمدلله باید به ملت ها احترام کنین باید به با قضایه ملت ها احترام کنین باید انسان من منحیس انسان احترام بکنین ما کنید پشت تو آمدیم روسای که آمدن یکونیم در اینجا به شهادت رساندن خیرس یکونیم میلیون شهید کرد تو بیه سی ملیونه شهید کو، ولی باز هم رسوا و تبا و برباد از افغانستان خاطر رفتی که ایالات متحدی تو هم تقسیم خواهد مثل که روسا تقسیم شدن برادرای محترم چالش دیگی که در مقابل ما تو قرار داره مشکل نشنالیسم و قوم پرستی است روز چهارشنبه محفل به خاطر قدس است امروز بسیاری کسا نمیفهمن که چرا قدس به دست ها افتاد در بین هزاران جوان وقتی که پرسان میکنیم خبر نداره قدس به دست سه صی اون سورد الکورکل اسرائیل سلیبی های انگلیس و اشجال که در ظاهر مسلمان بودن ولی قلبا کافر بودند امروز دشمنای اسلام سعی و تلاش میکنند که اتحاد ما و شما را از بین ببرند امروز دشمنای اسلام کوشش میکنند که اقوام در بین خود بیاندازند موتمنیس یک جوان با شهامت با ایمان مسلمان خود دوست می داشته باشیم اگر پشتون است اگر تاجیک است اگر ازاره است اگر ازبک است اگر بلوچ است اگر پشیو اگر نورستانی است کل از اینا را ما دوست داشته باشیم به خاطر از که کلش میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله ای فریب دشمن است، ای برنامه های دشمن است که ما اوترا قوم پرست می سازن. و کسی که قوم پرستی میکنه سراحتاً دشمنی خود با خدای از واجل ایلان میکنه، به خاطر که خدا میگه که ان اکرمکم عند الله یتقالكم بهترین شما با تقوایتان است، هر کسی که باشه. با ایمان با تکو بهترین شماست لکن پشتونای کمن میگن که بهترین شما تان است. زد غف خدا غف میزنه تاجیک های میگن که بهترین تاجیکی ها هست زدگ غف خدا غف میزنه اسبق های میگن که بهترین تان است هست زدگ خدا گپ میزنه و اینمی قسم هزاره های میگن که بهترین تان هزاره هست و اینمی قسم بمیش شکل نورستانی و پشتاری و خدای عزا و جل که این اکرامكم عند الله اتقاكم بهترید شما پیش خدای عزا و با تقویتان است برادران امشب در اینمی جد خوانه خدا اعلان بکنین که لعنت به نشنالیستان مرد به نشنالیستان ما ضد نشنالیزم مبارزه میکنیم ما مسلمانان افغانستان متحد هستیم ما تمام اقوام مسلمان افغانستان دوست داریم ما به خاطر حرم وطن خود جان خود قربان کنیم. باید شکل هست که ما می با جوانان و ما می از این مرکز افغانستان، از این مرکز پانتون افغانستان که اینجا تجمع تمام ملت ها و اقوام هستن از اینجا اعلان بکنیم و قطعا مثال بکنیم که برادرها ما راه ما فقط قرآن است، راه ما فقط راه محمد رسول الله است. ما دیگه چی در راهی پیش؟ برادرهای محترم مشکل دیگه که امروز در مقابل ما و شماست اینه باید درست درک بکنیم مشکل جه جهانی سازی و گلوبالیزیشن اونا چی میخوان آیا اونا میگن می دین جزو فرهنگ است و ما باید کل فرهنگار یکی بسازیم آیا فرهنگ ما رو میپذیری یا فرهنگ میگه تو چیستی من فرهنگ خدا سر تو تطبیق میکنم. این چالش ها را باید ما بفهمیم مشکل دیگه ما تهاجم فرهنگی است که امروز جنگ فکری و یا تهاجم فکری است که میخوان که ما را از فکر ما از عقیده ما و از ایمان ما دور بسازند و توسط بعضی انسان های و مستشرف گپهایی که در بین از او اینمی گندگی ها هست احیانا اعتراضات هست بعضی انسان های فروخته شده را استخدام میکنن تا مطابق برنامه کار بکنند. ما تو مسلمان باید بفهمیم که تهاجم فرهنگیست از این خاطر اونو قدر که اونها حجوم میکنه به مو انداز از مو اندازه از عقیده خود از ایمان خود از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع باید بکنیم به با ما اندازه باید چهره خود چهره اسلامی بسازیم به ما اندازه باید لباس خدا لباس افغانی بسازیم به ما اندازه باید عقیده خود، مستحکم تر بسازیم موضوع دیگه که برادران با او با خبری داشته باشیم با خبری از قضایاست جوانی که از قضایای معاصر بی خبر است، او پیش خداوند یک شانزده ارزش نداره. باید از قضیه فلسطین با خبر شویم. فلسطین چیجا بذ؟ خون فلسطینیها چقدر میریزه؟ این خون کی میریزانه؟ و او کسی که از اسرائیل دفاع میکنه، او کی هست؟ اینو باید کلش بشناسیم و همیشه طرفدار مسلمان های اسرائیل باشیم. ما طرفدار مسلمانای فلسطین هستیم ما به آزادی مبارزه کردن ما طرفدار مجاهدین حماس ازین طرفدار مجد زنده فلسطین زنده مثل مش فلسطین مرگ با اسرائیل مرگ با امریکا مرگ با طرفدارای اسرائیل زنده فلسطین مرگ به یهود نقطه دیگر برادران قضیه عراق است نباید از قضیه ایراق ما دور باشیم باید با عراقی ها با با های مسکین و مظلوم باید همصدا باشیم و از قضیه عراق باید دفاع بکنیم و همیشه در مقابل کسایی که سر ایراق تجاوز بکنن بر از اونا همیشه قد علم بکنیم موضوعی دیگه که برادرهای محترم من مختصر میگم که داکتر صاحب محترم چه تشریف اگر چی در مقابلشان برای من بیاده بیست که صحبت میکنم. این اینجا موضوعی سویمیش برنامه عملی است که یک مسلمان باید برنامه عملی برای دعوت داشته باشه جوان باید دعوتگر باشه دعی باشه مردم به دین اسلام دعوت بکنه و العصر، ان الإنسان لفی خص، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسب الحق وتواسب سوء. جوان باید مبارز فکری باشه، باید اندیشیه اسلامی حقیقی باشه باشه. از هیچ کس ندارد. این پنجاه سالی که موتی زندگی میکنیم سه صلوات کل مازیر خواهیم کرد. اگر امامی اوسان شاید نمیشد امروز میمورد. اگر بسیاری از اصحاب پیغمبر به شهادت نمیرسیدن می موردن ولی خود خود را اختانر زندگی کردن قهرمانانه موردن و قهرمانانه اسلام به دنیا انتقال دادن برادران در وقتی ضرورت یک مسلمان حقیقی باید مبارزه عملی هم داشته باشد، یعنی مسلمان مطابق روایت قرآن که الله من انفوسهم و اموالهم ان الله اشترى من و انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بفهمه که خداوند از ما خون ما خریده و از ما اموال ما خریده در مقابل جنت در صورتی که وطنش در خطر باشه ناموزش در خطر باشه دینش در خطر باشه تجاوز صورت بگیره اینجا باعث بالای انسان مسلمان فرض است که مسلحانه جهاد بکنه ضد دشمنان اسلام برادرهای مفترم نقطه دیگه ای است که ما باید از الگوها از اصحاب پیغمبر از کسایی که در مکتب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودند، از اینا درس بگیریم و مطابق زندگی از اینا زندگی خدا عیار بسازیم و در این صورت ما میتونیم که واقعا جوانای با فکر و با اندیشه باشیم و همیشه باور بکنین،, باور بکنین کسی که از خدا نمیترس از کل دنیا میترسن و او کسی که از خدا میترسه کل لگی از پیش از او میترسه اگر دیگران لشکر سرخ و سوز و با ما و تو لشکر خداست و مای عالم جنود رفت که لشکر خدا را به غیر از خدای عزوجل کسی دیگه نمیفهمه انسان با ایمان ارتباطش با ذات خدای عزوجل است انسان مؤمن در قلب خود هیچ ترس نمی داشته باشد همیشه در راه حق حرکت میکنه و به خاطر راه حق مبارزه میکنه و در آخر دعا میکنه که خدا بر ما توفیق رس ببودن که به چیزی که احکام اسلام است رو بالای تدبیر بکنیم خدایا ملت ما مظلوم بیچاره هست. هر کسی که بالای ملت ما تجاوز میکنه خدا یا تو آره شکست نصیب بکنی خدا یا هر کسی که به هر نامی باشه و ضد کلمه لا اله الله عمل میکنه خدا یا رسوا و تبایش بکنی پروردگارا ای شب های مبارک رمضان خدا یا از وای رحمت ما را محروم نسازی خدا یا از مقفلتت ما را محروم نسازی خدا یا در دهی گردن‌های ما را از آتش دوزخ نجات بده ای پروردگارا خدایا ما امشب اینجا ای